بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لصدري ويسر ليامري واحد لوقت من لساني يحقه بقولي والسلماني محترم نسلك موشمع دعو الغاز بي درس دیدن که خداوند متعال جلجالوهو برای انسانها نشان که چه قسم یک مخلوق که شیر جنگل گفته میشه شیر است و نام سلطان جنگل ای هم بری شرایط در باقوهش کلگی بچه چشم خود میبینند و رکاسی میکنن و نام الله جلجا جل لحوره به زبان خود میارند با ما و شما دیده در جریان ازی دقیق شده باشین که این با گفتن نام الله چقدر سرزی فشار میهه این ثابت میسازه یایت ای قرآنه که لو نزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله اگر این ما نازل میکردیم بالای کو شما ایکو کوها را می‌دیدین که بسیار با وقار و تواضع و متصدئا صدایان گنگ و گیج صدا در عربی سردردی میگن که سرستون داد کوان بسیار بود چهست کلاگ بزنن سردردی زیاد یعنی ها به حالت لرزه و تکان میامدن این انسان است که خداوند دوره کرامت داده و عزت داده که نام الله چل جل جلوه رو میگیره و برازی با ذکر و یاد خداوند اطمینان قلبی پیدا میشه درس امروز ما و شما این ممنعیس یک مقدمه خدمتان تقدیم کردم که ما در ورن از سمروزماس دلایل علمی به وجود خداوند متعال جل, جل هم. این دلائل علمی ما شما می‌بینیم که خداوند متعال جل جلاله ان ما یخشى الله من عباده العلماء. خداوند در میان بنده های خدا علما زیاتر از خدا میترسند. علما تنها علمای تنها علمه شریعت و اسلام نه بلکه هر عالمی که در هر تخصصی که او را واقعا عالم ساخته باشه واقعاً عالم باشه یکی است که یک کس ادعای علمیت میکنه که ما متخصص هستم اما یکی که او حقیقتا عالم است علمی که در سر از اون نزدن چرا که علم اگر در سر زند ماری شود علم اگر در دل زند یاری شود او کسانی که تعصب دارند و اعضای بدن از اینا پر از میکروب های مختلف شدن اینا اگر چیز یاد هم میگیره علمشان برشان مار میگرده چرا؟ باران که در لطافت تبعش خلاف نیست در دشت لاله روید و در شورزار خس. باران این باران است لکن در یک جایی میبینیم که گل لاله روی میتره به جای دیگه میبینیم که برعکس خس و خاشاک است در یک کوچه بغیر از گل لاله و گندگی و مرداری و بوی اینه بارم به جمهوری مرداری رو دا تر داد و به دا اینج گل لاله را آورد مشکل در زمین است که کدام زمین زمین پاک است و کدام زمین زمین مردار است از این خاطر اولمعایی که تعصب نداره اولمعایی که قبلا روزملکسن گفتم یک نفر یک کامپیوتر داره کامپیوترش چل جیبی داره کل از ویروس پر است ده او که هر قدر فایلای نو بخواهی که دهو او کنی و ده او کنی نمی از یک کسی که مغز و دماغ خودا از مرداری ها و کسافت ها پر کرده قرآن هده للمتقین است متقی کیست؟ این متقی است که از تعصبات و از خواهشات نفسانی ولی که ایمان نداشته باشه خدا بقایه کرده از جراسیم و میکروب ها حق با دارستن حق به قرآن سر تسلیم میگذارن و هدایت میشه اما انسان ولو که مسلمان باشه تا متعصف باشه بلاخره بیدین و گمراه میشه کسی که انا خیر من هو. من از دیگاه که در بهتر ترستم و هدایت نمیشه امروز ما شما میبینید که خداوند متعال جل جل و میگه که سنوری هم آیاتینا فی و فی انفوسه هم انسان دلایل قدرت خداوند و دلایل به وجود خداونده متعال جل جل رهوره به طریق فی الافاق در جهان بزرگ یعنی طبیعت و فی انفوسی هم در جهان کوچک یعنی وجود خود انسان ما دلائل قدرت خدا بر از این آنشان میدین ببینین به طرف طبیعت تا قدرت خداونده ببینیم و ببینیم به طرف جسم خود تا قدرت خداوند رو ببینید و ایمان برین. قل هلل یسأل الذين يعلمون والذین لا يعلمون خداوند میگه به پیغمبر صلی الله علیه و به با موتو که قرآن میخوانیم و ترجمه و تفسیر میکنیم بگو بر مردم او مردم آیا انسانهای با دانش عالم با انسانهای جاهلی که همیشه در جهالت خودم مصروف داشتن با هم مساوی هستند هرگز مساوی نیست انما یتذکرول الالباب کسانی میترند که از این استفاده بکنن از ذکر قرآن از یادداشت های قرآن از کتاب باز خداوند که ای طبیعت است از جهان کوچکی که جسم خود انسان است از یکی استفاده میکنن اول الالباب کسانی که لب دارن عقل و دانش و اندیشه و قلب خوده در کار میفردن و امروز با شما میبینیم که بسیاری از علما هستند که با دیدن حقیقتهای خداوند متعال جل جلوه ایمان آوردن کوشش میگرمی دلائر از از غیر مسلمان را اول ذکر بکنیم که او کسانی که بسیاری کسانی که فکر می‌کردند که با خدا در غرب کن از وجود خداوند منکر هستند نه خیر برادر عزیز تو که نمیفامی و اون کسی که قرآن نمی خوانه و اون کسی که از علم خود استفاده نمی کنه و اون کسی که استعمارگر است از حق منکر میشه حق حقم نیفاون نمی بیان بکنه و اون کسی که تحت استعمار قرار گرفته و شخصیت خود از گای قاید جیب یکی فروخته می شه قاید جیب دیگه خدا می این انسان از وجود خداوند منکر می شه اما علما ها فیلسوفا ها بزرگ ها ببینیم که با وجود ذات از زوجان اقرار و اعتراف میکنند. اسم سر از قول هرچال که در دانشمند است میگه چی میگه میگه هرچی دامنه علم گسترش یابد؟ دلایل محکم برای وجود خداوند ازلی که توانایی بینهایت دارد افزایش پیدا می کند هر قدر که میگه علم زیاد شود به می اندازه دلایل به وجود خداوند متعال جل, جل و زیاد می شد ای که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که مرا رفتم به واسطه براق سفر کردم دوست را یک قسمتی که رسیدن براق بر رفرف رف مبدل شد براق رفرف تا قسمت دیگه که در ویات آمده شد ای سالهای نوری ای رفرف رف ای که از کلمه برق گرفته شده. اینه کی میفهمید این ابو جهر و ابو لحف احساس نمی کرد چون او جهالت خود بود ولی امروز یک آلمه که در سانس و تکنولوژی به بیتر میفهمه او باز میفهمه که براق از چی گرفته شده از برق. و راکت ها توسط چی حرکت میکنن و رف رف چی مانا و چرا امواج نوری رفتن سالهایی که توسط ساینس و تکنالوجی محاصر محاسبه میشه توسط سالهای نوری محاسبه میشن وقتی که او وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ که وقت من به میراج رفتم وقتی که پیغمبر پس از میراج آمد حتی زنجیر دروازه شور میخور یک جاهله مثل ابو جهل و ابو لحم نمیفهمید اما این روز کسی که سالهای مورید هم میفامن میفامن که رفتن فضا با این سال وقت موتو محاسبه حاسب نمیشن با سوی عدیث پیغمبر صلی و علیه وسلم با بسیار دقتش میفامن از این خاطر ایچی میگه ای دانشمند؟ میگه بنابراین زمین شناسان، ریاضی دانان، فیزیک دانان در استحکام بخشیدن به بنیاد علم که همانا بنیاد عظمت خداوندی یگانه است شرکت نمودن این هم کردند کردن؟ بنیاد علم تقویت کردند. و این چی میکنه؟ این شناخت خداوند آسان تر میزازه. از این خاطر میگه این علماء و دانشمندان تانسته که بنیاد علم مستحکم بسازن یک عالم غربی بیان میکنه خانم بیتی با من که یک زن امریکاییست و قبلا بر گفتم کتاب را به نام اینک خوشید از غرب طلوع میکند نمشته کرده این میگه که پروردگار در قرآن میفرماید که ای مردم اگر شما در راهی خدا قیام نکنید ما ملت دیگر را از میان شما برای قیام برمیگوزیدیم یعنی اگر شما امروز احکام خداوند مد نظر نگیرین امروز شما از قرآن دوری بکنین امروز شما کافر و بیدین و گمراه شوین امروز شما مزجد و شرکت و فابریکه تدبیل کنین جای مسجد خانه هایتان بسازین برای خود دوکان جور بکنین ملت دیگری خداوند اختیار میکنه که با میک میدتر هستند از این خاطر این خانم بیتی با من چی میگه که میگه در این زمینه ها و دانش های زیادی را و دانشمندان به ارمغان می دانشمندان مشهور علما های بزرگ پزشکان استادان و بسیاری دیگر از شخصیت های معروف به اسلام رو می آورند در کجا در غرب اگر آفتاب اسلام در شرق رو به زوال شوه در غرب یه آفتاب درخشش پیدا میکنه چرا به خاطر از اونجا که روز به روز میشه. روز به روز در اونجا مشکلات زیادتر میشه روز به روز اونجا بدبختی زیادتر میشه از او خاطر اونها تشنه هستن به قرآن عظیمشان تشنه هستن به هدایت تشنه هستن به رهنمایی که بر از اونها شوه خانم که من بیشتر از یک هزار کتاب را در زمینه های مختلف از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی، مذهب، تاریخ و فلسفه ای این دو پیغمبر یعنی حضرت ایسا و محمد سلام به منظور یافتن حقیقت مطالعه کردم یا به آخر چی میگم؟ میگه هر یک از این کتاب ها و نظام های روحانی رو که کتا... من مطالعه کردم در چین کتاب های چینائی ها را مطالع کردم کتاب های جاپانی ها را مطالع کردم کتاب های ایندوها را مطالع کردم این کتاب‌ها چی میکرد؟ اگر پنج سوال من جواب میداد، پینجا سوال دیگه در ذهن من پیدا شد. لیسا ولایمر جواب گفتن نمیتونست ولی بالاخره سرانجام انجام اون چرا چند سال در 40 سال در پایان بودم راه برای من باز به هر چیز در دنیا 40 سال بعد میگم من قران یافتم به اینکه چند سال بعد من قران یافتم با قران ایمان آوردم به کتاب خوندن و, و شک کردم که اینا از غرب طول میکنه متاسفم مسلمانان نتونستن که قران از ایشون با آسانی به دسته دیگرا برسونه مسلمان ها قرآن شریف ها پیش خود نگاه کردن و خودشان هم قدرش ندانستند ندانستن مثلی که دکتر علی شریعتی میگه به قدری قرآن چی خسم کردن که قرآن بردن در قبرستان ها و زیارت ها نگاه کردن بر قرآن چل پینجا پوش میتن عزت قرآن در چل پینجا پوش نیست عزت قرآن در عمل کردن تلاوت قرآن و فهمیدن معنای قرآن است مسلمان در مقابل قرآن وقتی تمدن مسلمان ها به شکست مواجه شد که مسلمان ها تا عوضی که معنای قرآن به فهمه به میلیونها ها حافظ قرآن دارند که دوید میلیون ها حافظ قرآن ده نفرشان معنای اصلی قرآن نمی فهمن قرآن هم می خوانه ختم میکنه. در دو شب و سه شب ختم میکنه در مبارک رمزان ولی قرآن در وجود از او تأثیر نمیکنه خاطر چی؟ بخاطر خاطر این که ایچ که تای میره نمیخوانه که بیمانه باشه اگر یک اخبارم که بگیر دید که خطش ماناشو نمیفهمه پس میمانه بگیره یک اخبار دیگه رو که بر زبانش بفهمه و برشوازه باشه کتاب فکایی و خنده را هم که مانایش نفهمه کتاب فکایی رو هم میخوانه یک دفعه خنده میکنه یک دفعه فیشانویش ترس میشه چرا به مانا میخوانه؟ تنها قرآن عظیم و وقتی که در قابل قرآن عظیم و ظلم کردن نماز میخوانه خدا کتش گپ گف میزنه گفت خدا را نمیفامه چون سال از عمرش چیل میشه الحمدلله را العالمین ترجمه ایچه نمیفامه ظلم ای است قرآن هست دیز ختم کرده یک سپارش با مانا این ظلم است از این خاطر تا وقتی که به الفاظ مصروف شویم درست است که لفظ قرآن ثواب دارد موتو خود تجارت نیست که تمام رو ثواب جمع کنیم هج رفتم ثواب جمع کنم ختم کردم سواب جمع کنم نه موتو باید مدنیت اسلامی رو دوباره زنده بکنیم موتو باید پیان قرآن به در جهان برسانیم وقتی که موتو خود موتو کار شدیم و در پینجا پوش بسته کرده و در قبرستان رو ماندیم و عادتهای قبرستان رو در خانه خوادیم تمام روز شو جمع و روز شوله ش می‌دانیم که پیام قرآن به جهان برسانیم مولانا چی می‌گفت؟ مغز قرآن مغز را برداشتیم، مفهومش، حکمش، تمدنش، پوست را با دیگران بگذاشتیم. کسایی که قرآن شریف رو با خط طلایی می‌شتن، قرآن شریف با پولش میتن، قرآن شریف زری میتن، قرآن شریف رو میبرن سر قبر مرده، درس قاطا داورش میتن به خوان ای را این با دیگران ای کارا رو شما بکنید. ما از قرآن مغزشم ایواد داریم که قرآن برای ما چی میگه؟ هدل المتقین علامه عبد المجید زندانی یک عالم یمنی است که از جمله قرآن شناسای بسیار معروف است که در ایجاز علمی قرآن در کشورهای عربی بسیار شهرت داره. ای چی میگه؟ میگه ترتیب و تنظیم در اجزای اتم به خالق نیاز داره. وقتی که تو اتمو میخونی وقتی که چند سال پیش ایننی ما میگفتن که اتوم تجزیه نمیشه امروز کل گفهاشان غلط شد و میگه که اتوم تجزیه میشه وقتی که تو اجزای اتوم مطالعه می میکنی آیا ای اجزای اتوم به خالق میگه ضرورت داره خالقی ضرورت داره که نظم آن را به دست داشته باشد اگر تفاوت را میمون و طبیعت را قصیده فکر کنیم اگر ما این طبیعت مثل یک اگر تفاوت را میمون و طبیعت را قصیده فکر کنیم و خوبی خواهیم دانست که میلیون ها میمون با میلیون ها قلم توانند قصیده بسازند. اگر شما ببینید میمون ها زیادتر به انسان ها شباحت از این خاطر داروین بگفت که باید چی مگفت پدر کلان ما است بیا توزه که سکاد مامازو که مروسان ما کی اعتقاد دارم بچیتون بچیه قیده داریم به اینکه دارمین دفش راست بود البته بالا قایم چتو کدم شما ماییدی نظر, قبول, چطور این نظر قبول کنم افتما چتو نظر میتونم قبول کنم تو میگی مادر کلان و پدر کلان ما شادی بود خداش مادر کلان و پدر کلان ترا به شادیگری مبارک به تو داشته باشه من میگم مادر کلان ما هوا بود و پدر کلان آدم خداوند انسان کرامت داده. تو که خود شادی فکر میکنی و نواسع شادی فکر میکنی خدا تا شادی داشته باشن ما را خداوند انسان خلق کرده ما انسان هستندگاه تو چرا را شادی گری خود سر ما تحمیل میکنه تو برو در باقوش نراکت برید باز ما سر کردنه خیر تو باز میگیرین باز پایده پیش برای تو سبزه بخرده بخور بخلن. اینال شادی ها به ها زیاد شباحت دارن از این خاطر؟ داروین میگه که اصل انسان شادی بود و ودبل آخره شدور کردن. اینال عبدالمجید زندانی چی میگه؟ میگه باری یک اتومیل کنی، این حجاراتی که ساخته شده، این انسان‌ها یک حجرات ساخته شده، این اجزاء اتومیلی که در هر جای وجود داره. اگر این طبیعت تو مثل چیز وار فکر کنی، پس میلیون‌ها نمیتونن این را مثل یک قصیده وار فکر کنی. آیا میلیون شودی یک کسیدا بگویه یک شعر بگویه؟ اifstream نه به همین قسم میلیون ها انسان نمیتونه که یک قسم آفتاب بسازن یک قسم محتاب بسازه یک قسم بسازه پس کی از آنو قسم که شا... میمونا قصیده ساختن میتونه انسان هایی رو ساختن میتونه تمام دشمندهای امروزی کل زحمتشان داشی به راه در یک نقطه بوده که امروز افتابه کش کردیم امروز ماه تا کش کردیم امروز فلانی ستاره کش کردیم امروز فلانی کوه کش کردیم امروز تیل کش کردن فلانی چید تا مارو هم در کش که یکشان امروزک فابریك تیل سازی بسازه اگه فابریکی تلسازی ساخته میتونه چه با امریکا میمه در روز میلیو ازارهای یراکی را می کنش تیل بندی که تلسازی بوبرم بندیکا ای انتقال بتنیم تیل ساختن نمیتونه اونمون که در کعبه شریفه قرآن عزیزی میشونه ازل کرد اونمو خدا در زیر زمین کعبه تلسازی خلق کرده. باید ما مسلمان بالا رو کشف می ولی از اینکه ما مسلمان ها قرآن شریف پر پوش می کنیم ده سر عروس کورا بیچاره خرم جانانگه که قد بدل میمونم امیر صاحب غلط است قد قد رز گل بولور قد گل خو یاد بلسد دگه جونونگه که قد بسارو میمونه که در اقل اموی شایر بیچه را هم توصیف شد اگر آرس بفامکی من را درشنام میترد و بعد خود نمیمانم اموزادندر از تا خود میکشه جانان اگر که قدت بدل بباره یا قدت یک بلسست را رفتنک های داغ و بدل میمانه یعنی رام که میری داغ داغ داغ میکنی باید باغ باغ میکن دکتور تومس دیوید چارکس متخصص فلسفه و کیمیا ا دکتر تونوس چارلس متخصص فلسفه و شیمی و رئیس تحقیقات شرکت شیمیایی کلافز میگه من معتقدم این یک آلی میگفه میزنم بگم. من معتقدم در طبیعت همه چیز از روی مشیت و نظم انجام گرفته و نگیرد و لازمه این نظم مشیت این است که از جانب یک آقل و صاحب اراده باشد و من آن را خدا میدانم یعنی این یک حالمی بسیار بزرگواره که رئیس تحقیقات شرکت شیمیایی کلکس یعنی منبعی که می که در طبیعت همه جیز به یک نظم در حرکت است وقتی که نظم داره این نظم باید کرد ترتیب و تنظیم کنه یک کسی باشه که او تنظیم بکنه و صلاحیت ادرا داشته باشه و با دانش باشه و عالم باشه و عالم الغیب و شهاده باشه میگم من اینمی کسی که اینمی ترتیب و تنظیم جور کرده من اینمی له خدا میبانم با وجود خداون اعتراف میکنم پس این عالم به وجود خداون به اساس علم خود اعتراف میکنه دکتر جان آدلف بهلر دکتر از در فلسفه ای اتمی در دانشگاه اندیابا و استاد شیمی از کالج الراسول میگوید در طبیعت به هر سووندی نظم و مشیت نمایان است گویی دنیا سوی هدف و مقصد مشخص سوق داده می شود و این معنی در عالم اتم کاملا روشن است این قسمی که دنیا در حرکت است به این شکل اتم در حرکت است خب تمام اتم ها از هیدروجن گرفته تا یورانیم از روی یک مدل ب وجود آمدن زیرا هنگامی که دایره اطلاعات ما را جمع به ها و پروتون‌هایی که عناصر مختلف را تشکیل دادند بیشتر می شود ما بیشتر متوجه نظام هماهنگی جهان بشود در خاتمه گفت خود چه میگ گف؟ می ما به جای در نظر گرفتن کیفیت آفریدگار او انسان تو دولتی دبار دا خالق فکر کنی در خالق فکر نکو اوض زاید شمردن خدا باید او را در میان نظام جهان ببینیم و آثار و نشانههایش را ستایش کنیم بشر می تواند مشغولات طبیعت را کشف و در کند و نمی تواند قوانین طبیعت را خلق و ایجاد نماید و تنها خداست که می تواند قوانین طبیعت را وزن و ایجاد کند. تو انسان بسیار ضعیف هستی تو هم بسیار آجود استی به این ویزی که خدا مصروفه درک خداوند کنی بینی در اطراف تو که دلائل قدرت خداوند دلائل وجود داره که کلی از این مثل که سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر روشیار هر ورقش دفتر اسم معرفت کردگار هر ورق که ببینی هر برگ درخت که ببینی بعد در, در منزل سیوم بعد در, در, در منزل سیوم رسیده تو بیچاره انسان وقتی که منزل ک یا که صاف میبری یا مش که در پشت می کنه بالا میکنی خیبرید بر دو آخرین درخت که در منزله سوم رسیده آوه از زمین کی بالا میکنن کنن حتما یک واتر در بین درخت است این واتر که حل کردن که حل کردن کی به برق بعد میرسونه اگه بدست تو می بود کنه درخت پشت خوش میشد از پشت خوش میشد <تصفيق> اما او اگه در یک برگ میلیون برگ برای هر میلیون برگ میلیون قطره آب میرسونه یک داروشمند دیگه بنامه روین پاستور روین پاستور کسی بود که بل... برای اولین بار مکروبه کشف کرد برای اولین بار مکروب روین پاستور کشف کرد وقتی که ازیب پرسان کردم که خواهی پاستور تو که مکروبه کشف کردی باید از بیست کار به چند قرن قبل از تاریخ، بعد از تاریخ افلاطون، سقراط، فیلسوفا بودند. کدام از این فیلسوفا مگر کشف کرده بود، کشف نکرده بود؟ کیومرث کشف کرد؟ نو پاستور آمد کشف کرد. پس افلاطون بهونه گفت نامش با بود فیلسوف است. سقراط بهونه اونمون فیلسوف بودن خود مگر به نامش شناخت به چاره. مگر به نامش کشف کرد در قرن پاستور احمد قرم میکروب کشف کرد وقتی تو رپورت پرسان کردن وقتی که تو میکروب کشف کردی با وجود خدا چی نظر داری گفت با این کشف اگه پاستور این ماده اول قفس گفتین هر کس بازی و رو میخواد کپی کنه برش میتون در اینجا که قفس با این کشف عقیده من به خدا صد چندان شده است چند چند یعنی ست فیستت ما با وجود خداوند متعال جل جل و ایمان آوردیم که ما انسانها که فالسوفا که در باری آسمان فکر میکردیم از خانه خود خبر نداشتیم فالبین بگشتش چه بود؟ آمد باشه پلیس گفت که پولیس هم چی گفت؟ پولیس گفت چی گفت؟ جان روکو والا به خالیم می کسی سر خانم ما تجاوز کرده؟ خب گفتم می دلابه شاید شده چمشیران از آسمان و از ستاره ها و از مری از كل چیز خبر داره از خالص خبر نداری ما از آسمان و علام مثل جات از میکروب که داشتت چاپ داشت میکروبش داشت اشتباه زیاد خوردن باشه حساب از خبر بود فایل نه ما بعضی نظریات چیزایی که داره ادال گازر و از اس بس پاستور وقت کرد انسان قدر ضعیف و عجز هستم که تا میکروسکوپ نبود من اتان سه میکروبه کشف بکنم پس من چیزا این میکروب ها زندگی میکنن تولاد و تناسل میکنن زیاد و کم میشن یا بالاخره سبب امراض میشن زباب و چیزا بشن و که ببینیم زندگی دارن تولاد و تناسل دارن زندگی و مرد دارن کل این چیزا را دارم و دهی به کن و بار از است چند بولز میلودو چمقان قبله دل هیچ کس نمیشنه معلوم میشه که انسان بسیار ضعیف است و روز بر روز علم انسان زیاد میشه از این خاطر با کردن این میکروب رن پاستور با وجود خداوند متعال جل جلاله 100 درصد عقیدش زیاد میشه دیکارت یک فیلسوف معاصر است به نام دیکارت نظریات زیاد داره وقتی که دیکارت به انسان که نظر تو در باره خدا چیست فلسفه به چه کساس فلسفه نما فلسفه خاندیم چی فلسفه را خاندیم چون تو کتاب هزاریت شب خانده خدا فیلسوف میگه. این آنه فیلسوف. به این همه شکنه خدا من فیلسوف بانم دیکارت فیلسف است فیلسف اونو روز در گوز کسی من گفت که آلم ها باید دعوت کرد من گفتون برا در گل از نگاه اسلام آلم کسیست که علمه شروع به وحدانیت خداوند برسنه تو که لا اله الله و محمد رسول الله میگی و میفهمی که خداوند یکیست گوه پرستش نمیکنی شادی رو پرستش نمیکنی امسان دیگه رو پرستش نمیکنی تو بزرگترین عالم هستی یعنی نفر بسیار پروفایزور یک دفعه خودت در جهالت میزنه چه میزنم ماسٹر پروفیسر ہندستان بیچارہ تو میں نے پس خود سا باز بار عالم گفتن اگر تو عالم بودی اج عقل تر شخصیت میداد و میفهمید من این انسان کرامت دارم ای گاو بر ما بر ما چی شده خلق شده؟ گاو ما برای دو میگیم ما, باره، ما باره، از این خاطر گاو و رو ببینیم هم تو نر نر میگازند درویای بازار ده در دوستان <تصفح> <تصفح> و هندستانیا چیکام به تختید پوششون چسبیده از گوشنگی میمرن این شد <تصفح> دین لو چہ گاری دیداری تیلابت کجنا جوہ کلال خوب میکنی از گشنگی اے تو موالم تو قسم سر زنا مارے ان کو مار برش خدا مری خدا برسمون خلق درد بخو یه نمیخورم نه خوب بلا با پس خب دیکار چی میگن؟ سر کنید میگن من با درک نقص وجود خودم هستی ذات کامل را احساس میکنم دیکارت میگه که من وقتی که طرف وجود خود میبینم درباره اعضای بدن خود فکر میکنم میبینم که من چقدر آجاز و بیچاره و ناتوان هستم با اینمی آجازی و بچارگی و ناتوانی خود احساس میکنم که نسبت به من ذات قویل وجود دارد که این ها رو نداره و اون ذات خدا مند متعال جلی چلیه کسی شما دو وقتی گذرشتا گفتی بیم؟ فراهان که میگف انا رب بکنم الاحلا ما خدای بزرگ شماستم زنج برش که فزیزم فراهان جان صدقی چوام اون شکر که دندان در بودی تاسوب نوتک میزدی تو رب به اسفل هم شده نمیتانی چطور بود رب به خدا میگیری؟ تو هیچ خدا شده نمیتانی از تو که در مرخ ماخروبه تو مریض بود تا که مورد چیخ رو نمی تو خدا یک مریضی تا صبح چیخ زده می رفتی تو را خب منشناستم بگرد تو چرا تو کار میکنی زن فرام مسلمان چون بید که کس که دعای خدایی میکنه از علم خود کار گرفت و دیدو کسی که ادعای خدایی میکنه خودش جامل مطلق خودش ضعیف است از این خاطر دیکارت میگه من با درک نقص وجود خودم دیدم که در وجودم نقصان است احساس کردم چیست است هستی ذات کامل را احساس میکنم که ذات کامل وجود داره که نقصان نداره کیز الله جل جلاله است اینو چی میگم نیوتن یک عالم دیگه است چی نگه؟ درباره آفریدگار شک نداشته باشه درباره خدا او مردم شک نکنه نیوتن بزرگترین علمه کسایی که در سانس تکنولوژی دسترسی دارن استعابه مکتب و معلمین یا خوبتر میشن اصلا نیده نیوتن ها. یوتان چی میگه دربارۀ آفریدگار شک ندوشه باشید زیرا که قابل تصور نیست که اساس و زیر بنای این هستی تصادف محض باشه عموماً به این شک من یوتن هستم عالم بزرگ هستم من بسیار تخصص دارم مگر که این نظمه که در دنیا هست اینا میتونه تصادفی باشه اگر تصادفی می بود دو بالا یک دونه یک سرآخط می بود بل چشمش تصادفی می مجبور بود چشم یکی داپشت کلهج باشه چشمش در روی یکی چشمش در فقط پشتش باشد خدا صادف است اما این که کلگی چشمش در رویش هست اعضای بدنش منظم است یک روز لطفا در ماینات تلویزیونی برو یک چند تا یک در مصرف کن بر امون نفر برو برو بر اتراسان بر از او برو که مسئول صاحب اتراسان تو امی وسیله یک بگه شکم نبال ببینی که در دا داخلت چی حال است؟ یک شاعر میگه بدرونت چی شاعر معیمنه است قصر شیرین و ملک فرهاد است. تو یک داخل داخل شکمت سایگو که شاعر معیمنه آره چی بگو؟ شرکت هاست چی فابریکا هاست قصر شیرین و ملک فرهاد در دا داخل شکمتوست فابریکی خونسازیست بیست شاست های برات خون تولید میکنم یک زبانچه صحبتی ما که تا در اون عبوریه می زبانچه ما و شما بسیاری کسا هستیم وقتی که نان میخوریم در جریان نان خوردن گفت میزنیم وقتی که گفت زدیم نان تا گلو رو میپره ولی یک میگه مردمایی که به حساب کلاسیک هستن باز میگه کوهام کاسه ترا یاد کرد این است از نگاه علم و ساینس طب، دهای دهی قسمت وجود انسان دو malas یک نال 24 ساعت خواب و شبانه باشی واسه هوای را به تو انتقال میتن تنفس میکنی و نلکه بیدیوی که اینجا هسته ایچه یکی فرداره غزاره که میگوری غزاره انتقال میده با کجا؟ به طرف میدید امان این ای یک نلکه این طرف است این نلکه دیگه این طرف است متوجه شده؟ امان بگه به سر یک زبان چرا که اوتوماتیک است که هوا آمد اول شش میکنه وقتی که غضابت رو دیگه باز میکنه اگر در جریان غض زدن نار خوردن دهن بزنی هوا اون ازش یک جای میشه ایمان وقتی که اینی ریس چهار سن اگر یک دقیقه کار نکنه یک قطره در طرف شوش طرف سلفات کلامی میری تا که بپره اگه نو تو داخل شش و حلاکت انسان ببطل میشه. پس اینمی نگه ها که اینمی زبانچه که در بین چیز اوتوماتیک کار میکنن و حکمی کار میکنن ذات هست که ایرا الله جلاله جلو را تنظیم و ترتیب کردن برکسول فلسفه فرانسوی چی میگه میگه ممکن است گروه های انسانی فاقد علم فنون و فلسفه یافت شدن اما هرگز فاقد دین پیدا نشوند این میگه من از یک عالم من از یک فلسوف میمو... میفهمم که هیچ کسی بدون دین نیست شاید یک نفر فلسفه نفهمد شاید ان نفر جاهل باشه شاید اگر علم نداشته باشه اما بیدون دین هرگز یافت نشدن کس که کسی که بدون دین است یه از انسانیت برآمد است را گفت یوزی کسی که بیدون است از دایره انسانیت خارج است. آرن در تاریخ ادیان میگه هر چیزی ممکن است از میان برود اما نابودی دیانت امکان نداره. هرقدر که زامت بکشن نابودی دین امکان نداره. بلکه دین هست و متدینین هستند و علم ثابت میکنند که خدای وجود داره و یک سلسله مردمهایی که از خدا انکار میکنند او خودشون یک فالسوف ریاضی است پاسکال پاسکال چی میگه؟ پاسکال یک علم است به نام علم احتمالات میگه من به وجود خداوند و روز قیامت به اساس قانون احتمالات ایمان دارم قانون احتمالات قانون است؟ احتمالات عبارت از قانون است که مثلا یک نفر میخواه سفر بکنم از کابل به بلخ درا میره ب سفر درا میره به امر خود با همرا موتر،, موتر خود طیر اشتبنی میگیره به مرا خود احتمال م میره که در دل نباشه همرا خود غذا میگیره احتمال از این میره که آب نباشه بر خود آب میگیره اگه اینا طرف مقدس سفر خود میره قانون احتمالات رو مراعات میکنه این چیزها رو میگیره وقتی که درا رفت اگر اونجا رسید پیچ و طلام درا بود آب اومده مشکل نبود چی نقص کرده؟ نه هیچ نکرده. اما اگه یک ای نفر این قانون احتمالات رو در نظر نگیره و این به شکلی که نه آب داره نه نا نان داره نه نا طیر اشتباهی داره این میر اعتدرا برایش یک مشکل پیدا شه باز چی میکنه؟ این انسان در مهم را موترش پنکر میشه و در را میمان را سرگردن بگه من نصیت عالم ریاضی به اساس قانون احتمالات به آخرت و به خداوند و به روز و با جنت دوزخ ایمان دارم اگر احیانا جنت دوزخ دلیونها دلیل وجود داره بس من هیچ نقصه نکردیم اما اگر بود و اما با خود ای چیز نکردم. باز چی خود کردم از این خاطر میگه من هم میخوانم روزه هم میگیرم با خدا هم دارم به روز قیامت هم به اساس قانون احتمالات میگم ما به این چیزا ایمان دارم و فرانسیس بیکن یک فیلسوف دیگه است این میگه که اطلاع اندک و ناچیز فلسفی عقل آدمی را به الهات میکشاند اطلاع اندک و ناچیز فلسفی عقل آدمی را به الهاق میکشند ولی پیشرفتن و تعمق در آن اندشه ها را به ایمان رحنمون میگردند ای کسایی که فیلن فیلسفه ما هستند از وجود خداوند این کار میکنند یا چه خیزم برده ما که یک دو کتابه که مقدماتی فلسفه را خواندن و خوده کفر کشدن اما کسی که عمیقا و فلسفه امیکا تخصص سااصل میکنه و درست میخواند بالاخره ایره و طرف ایمان سوت میند و کریس میس عئی سابق آکادمیولون در مینید ما که از بزرگان علوم جدید در کتاب ترجمه شدیم عل میلیید اول ایمان هیچ ای چی میگد یا کتاب از تجربه شدن نام کتاب از بری علعلم میلیید اول ایمان علم مردم را به ایمان دعوت میکنند یک کریس موری چی میگن؟ می معمای که بسیار مشکل است و نیاز به پاسخ دارد مخصوص مرمایی های آبیست آنها موجودات عجیبی هستند وقتی که در یک قسم مرمویی ها هستند میگه در یک منطقه پیدا میشن باز برق توخ توخون میبرن ان میگه به اون طرف سراد جلوبی امریکا اونجا میرن توخ خودام میگذارن باز اون چچاکا که میبره اونجا میبره, میبره، چچاکا کا از تخم میبرن باز نمی جای اصلی که مادرشان بود که هزارها کیلومتر فاصله داره پس میایه میگه وقتی که من یارا میبینم تعجب میکنم که برای ازنا کی راهنمایی میکنن آره را کی برای ازنا نوشون دادن با غیر از خدای عزوجل که برای ازنا و در سرشت ازنا چیزها نهاده هیچ کس دیگه نمیتونه هرچل دانشمند معروف و استطراشنال چه میگه؟ میگه هر قدر دامنه علم گستریتر میشود استقلالهای دندانشنکن و قوی برای وجود خداوند ازلی و ابدی بدستنی هست میشه میشکل و دانشمندان و همه از اینا با وجود خداوند متعال جل جل ایمان دارن حتی یک روز یک آلم دیگه که میگه من دفتر نروی میگه من میگفتم امی تخمک این چوچنگو رو چود میتونه که تخم بشکنانه پوست خدا از بین از این برایه؟ میگه بلاخره میگه من تحقیق کردم کردم کردم کردم تحقیقات ما به این نتیجه که دیدم که در وعده که تخم چوچنگک وقتی که مرحله دیرون برامانش از تخم میشه و قدرت های خدای عزوجل یک سوزنکه خرد در نوع که نوزش پیدا میشه ای سوزنک در این سوزنکه که توی تخم میذونه از داخل تخم سوراخ میشه وقتی که تخم سوراخ شد هوا از بیرون داخل تخم میشه داخل تخم که هوا شد این که ای که ترس خوش شد میره خوش شده مرا مسئله امون انقضاب و انبساط ما و شما در فیزیک خواندید که وقتی منقبض می باشه این انبساط میشه مثل که اول در چینی درن یخچال دانی اول که این منبسط میشه منبسط میشه چی میکره کاثرم مشکنانه و میگه وقتی که ای چوچه مرخ داخل شد این کنت هم خوشک میشه این به پیدا میکنه. بالاخره بلاخره که قوی شد توخان دو طوبه میشه و ای از بین میباید بگم ما ایران ماندم که ای سوزرکه در روک مولی ای چوچه مرخ که خرق کرده این کی یوردن ذات خداوند متعال جل جلاله این نظام از این تمامی کتابهای آسمانی تمامی پیغمبر ادعا و ایمان میلیاردها انسان به وجود خداوند ادعا و ایمان ملیون ها انسان دانشمند تمامی کائنات قرآن عظیمشان هزاران دلیل عقلی اکتشافات علمی کلی از اینا ثابت می‌سازند که خدای وجود داره که ما مسلمانان بر ذات خداوند متعال جل جل ایمان داریم به اون ذات خداوند عز جعل الله عزك ما وش ما يخليه ك الحمد لله العالمين. ربك رب العالمين سبحان ربي ك رب العزة يعماصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم جعلنا من الذين يسمون القول فيتبين أحسن اللهم إهدينا بهداية الإيمان اللهم إهدينا بهداية القرآن اللهم احفظنا من شر الشيطان الرجيم اللهم جعلنا من الذين يسمون القول فيتبين أحسن اللهم جعلنا من الذين يسمون القول فيتبين أحسنها اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فاتليون أحسنها اللهم إننا نود بك من عذاب القبر ونود بك من عذاب النار ونود بك من فتنات المسيح الدجال ونود بك من فتنات المحيى والمامات ونود بك من الشرك والكفر والنميمة والغيبة والبدع والبهتان اللهم جل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.